در خلوتمون با خدا، تذکراتمون، توبهمون، نمازهامون، عباداتمون، مخصوصاً دعای شریف از من البلاء و بری خفا اینا رو بخونیم، از خدا بخوایم برسانت صاحب کار را، با او باشیم. حالا اگر رسون، ترسون، اگر نرسون، دور نریم ازش، از رضای او دور نریم، او می‌بینه، او می‌دونه. حرفایی که ما به هم میزنیم او جلوتر عین الله الناظره و عذنه الواعيه او جلوتر از ما ها میشنوه هر هم دیگه را بلکه خودمون که حرف میزنیم آها این, این صدا از لب میاد به گوش فاصله ای دارد او جلوتر از این فاصله حرف خودمونه میشنود از خودمون کلام خودمون را اون وقت ما ما میتونیم کاری بکنیم که اون نفهمه میتونیم کاری بکنیم که اون ندانه